وَأَهْلَ الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنذل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون و با اهل کتاب جز به روشی که آن بهتر است مجادله نکنید مگر کسانی از آنان ستم کردند و بگویید به آنچه از سوی خدا بر ما نازل شده و آنچه بر شما نازل شده ایمان آبرده این و معبود ما و معبود شما است و ما برای او تسلیم هستیم وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَا أُولَئِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ این گونه کتاب را بر تو نازل کردیم پس کسانی که به آنها کتاب آسمانی دادیم به آن ایمان می آبرند و از همین گروه کسی است که به آن ایمان می آبرد و آیات ما را جز کافران انکار نمی کنند و نکن و تو هرگز پیش از این قرآن هیچ کتابی را نمی و با دست راست خود چیزی نمی نوشتی اگر چنین بود باطل گرایان به شک و تردید می افتادند. بل هو آیات بینات في صدور الذين اوتوا العلم وما یجحد باياتنا الا الظالمون بلکه آن قرآن آیات روشنی است که در سینه کسانی که دانش داده شده اند جای دارد و آیات ما را دو ستمکاران انکار نمیکنند. وقالوا لولا انزل عليه آیات من ربه قل انما الآیات عند الله و انما انا نذیر مبین و گفتند چرا نشانه هایی از سوی پروردگارش بر او نازل نشده است؟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 آنچه را در آسمانها و زمین است می داند و کسانی که به باطل ایمان آوردند و به خدا کافر شدهاند اینان زیانکاران واقعی هستند و استعجلونک ولولا اجل أَجَلٌ لجاءهم العذاب الْعَذَابُ وَلَيَئْتِيَنَّهُمْ بَغْتَتًا وَهُمْ لَا يشعرون. و آنها با شتاب عذاب را از تو طلب می کنند و اجرماعد مقرری تعیین نشده بود یقینا عذاب الهی به سراغ آنها می آمد. و ناگهان در حالی که نمیدانند به سراغ آنها خواهد آمد بالعذاب و بالعذاب جهنم و با آنها با شتاب عذاب را از تو میطلبند و, و بیگمان جهنم به کافران احاطه دارد یوم یوشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم و یقول ذوقو ما کنتم تعملون روزی که عذاب آنها را از بالای سرشان و از زیر پاهایشان دربر بر گیرد و خداوند به آنها می بچشید آنچه را انجام دادید يا عباد الذي آمعمل إ أربّ واسع سعيا فمود ای بندگان من که ایمان آبدد بی گمان زمین من وسیع است پس تنها مرا بپستید كل ننفسذائق ثم مَ إلينا هر کسی چشنده مرگ است سپس به سوی ما بازگردانده می شوید و الذین آمنوا و عملوا الصالحات لنبوی انهم من الجنة غرفا تجری تین ان و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند قطعاً آنها را در قفهههایی از بهشت جای میدهیم که نهرها در زیر آنجاری است جاودانه در آن خواهند ماند. چه خوب است پاداش عمل کنندگان <الذین> <و على> <يتوكلون> همان کسانی که صبر کردند و تنها بر پروردگارشان توکل می کنند و ت لا تحمل رزقها الله یرزقها ویاكم وهو السمیع العلیم و چه بسیار جنبندگانی که روزی خود را بردوش نمیگیرند خداوند به آنها و شما روزی میدهد و او شنوای داناست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 البته میگویند الله پس چگونه از حق منحرف میشوند الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و له ان الله بكل شیء علیم خداوند روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد فراخ میگرداند و یا برایش تنگ می دارد بیگمان خداوند به همه چیز داناست و لئن سألتهم من نزل منت سمائی ماء به الارض من بعد موتها يقولن الله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 و ما هادی من الحیات الدنیا ایلا لهو ولعب و, و این الدار الآخرة لهی الحیوان لو کانو یعلمون و این زندگی دنیا چیزی جز سرگرمی و بازی نیست و بی تردید اگر میدانستند سرای آخرت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 باز آنان شرک میآورند آورند بما بِمَا ولیتمتعوا فسوف فَسَوْفَ تا آنچه را به آنها دادی ایم کفران کنند و تا از لذات زندگی دنیا بحری گیرند پس به زودی خواهند دانست اولم يروا اننا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم اف بالباطل يؤمنون وبنعمه الله يفكرون آیا ندیدند که همانا ما حرم امنی برای آنها قرار دادیم در حالی که مردم از اطراف آنان آن میشوند آیا به باطل ایمان میآورند و به نعمت خدا ناسپاسی می کنند و من اظلم من من على الله کذبا أو کذب بالحق لما جاءه علیسه فی جهنم متول للكافرین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 و کسانی که در راه ما کوشش و جهاد کنند قطعاً به راه‌های خیش هدایتشان می‌کنیم و یقیناً خداوند بانی کوکاران است بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان الف الف، لام، میم. قلبتِ الروم. رومیان مغلوب شدند. في ادنِ الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. در نزدیک ترین سرزمین. و آنها بعد از مغلوب شدنشان به غالب خواهند شد فی مضاعی سنین لله الامر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح ظرف چند سال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 و او پیروزمند مهربان است وعد الله لا يخلف الله وعده ولیکن اکثرن الناس لا يعلمون خداوند بعد داده است خداوند هرگز بعدی خیش را خلاف نمی کند. ولیکن بیشتر مردم نمیدانند یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخره هم غافلون آنها فقط ظاهری از زندگی دنیا را میدانند و آنها از آخرت غافلند اولم يتفکروا فی ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وَإِنَّ كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون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 أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض واعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم وَجَأَتهُم مُصُلون بِالْبَينَاتِ فَمَا كانَانَ اللَّهُ لَغْنمَهُم فَمَا كانََ اللَّهُ لَغْنِمَهُم آیا در زمین گردش نکردند؟ تا بنگرند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود؟ آنها نیرومندتر تر از اینان بودند و در زمین دگرگونی به وجود آوردند و آن را بیش تر از آن که اینان آبادش کرده اند آباد کردند و پیام برانشان با دلایل روشن به سوی آنها آمدند پس خداوند آن نبود که بر آنها ستم کند ولیکن کن آنها به خودشان ستم می کردند. ثم كان عاقبت الذين أفسدوا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها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 آنگاه به سوی او باز گردانده می شوید. و یوم تقوم الساعت یبلس المجرمون و روزی که قیامت برپا شود مجرمان نامید شوند. و لم یکن لهم من شفعاء و و برای آنها از معبودانشان شفیعانی نخواهد بود و نسبت به معبودانشان کافر میشوند و یوم تقوم الساعت یومئذی یتفرقون و روزی که قیامت برپا شود آن روز مردم از هم جدا می شود فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَتِ يُحْبَرُونَ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 ما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك في العذاب محضرون واما كساني كافر شدند و آیات ما و دیدار آخرت را تکذیب کردند پس اینان در عذاب الهی اهزار شوند فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون پس خدا را تسبیح گویید هنگامی که شام میکنید و هنگامی که صبح میکنید وله الحمد فی السماوات والأرض و الارض وعشیا وحینا تظهرون و حمد و ستایش مخصوص اوست در آسمان ها و زمین و عصرگاهان و هنگامی که زجر می‌کنید یخرج الحی من المیت و يخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها و تخرجون زنده را از مرد بیرون میآورد.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 بیگمان در این امر نشانه‌هایی است برای گروهی که تفکر می‌کنند. آمِن آیاتی خلق السماوات والارض و اختلاف الستنتكم والوانكم ان في ذلك لآیات للعالمین. پس نشانه‌های او آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف زبانهایتان و رنگهایتان است، بی تردید در این نشانهایی برای دانایان است. و من آیاتهی منامکم باللیل و النهار و من فضله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 وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ و از نشانه‌های او این است که برق را برای بیم و امید به شما نشان می‌دهد و از آسمان آبی نازل می‌کند آنگاه زمین را بعد از مردنش به آن آب زنده می‌کند بیگمان بیگمان در این نشانه‌ای است برای گروهی که می‌اندیشند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 و از نشانه های او این است که آسمان ها و زمین به فرمانش برجای می ایستند پس هنگامی که با ندایی شما را از زمین فراخاند ناگهان شما خارج می شبید. و له من فی السماوات والارض کل له قانتون و از آن اوست هر که در آسمان ها و زمین است به همگی فرمانبردار او هستند او هو الذی یبدأ الخلق ثم یعيده وهو اهون علیه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم و او کسی است که آفرینش را آغاز می کند. سپس آن را باز می‌گرداند و این باز گرداندن بر او آسان است و توصیف برتر در آسمان ها و زمین برای او است و او پیروزمند حکیم است براب مثلا من انفسکم هل لکم ما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم نفصل لقوم خداوند برای شما از خودتان مثلی زده است آیا بردگانتان در آنچه به شما روزی داده این با شما شریک هستند تا شما در آن برا برابری و یکسان باشید همان همانگونه که شما از شرکای آزاد خود بیم دارید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 منیبین ایلیه و اتقوه و اقیمو الصلاة ولا تکونو من المشکین به سوی او بازگردید و از او بترسید و نماز را برپادارید و از مشکان نباشید من الذین فرقو دینهم و كل حزب بما فرحون. از کسانی که دین خود را پاره پار کردند و فرق فرق شدند و هر گروهی به آنچه نزد خود دارند خوشحالند و اذا مسن ما دعو ربهم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ دَعَوْا مِنْهُ و هنگامی که رنج و زیانی به مردم برسد پروردگارشان را می‌خوانند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 پس از لذات دنیا بهره بگیرید که به زودی خواهید دانست ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. آیا دلیل محکمی بر آنها نازل کردیم پس آن دلیل از چیزی که با خدا شریک میسازند سخن میگوید و اذا اذقنمات رحمتا فرحو بها و تصبهم سيئة بما قدمت ایدیهم اذا هم یقنطون که رحمتی به مردم بچشانیم به آن خوشحال میشوند. و اگر به خاطر که انجام داده اند رنج و مصیبتی به آنها برسد ناگهان مأیوس میشوند اولم یرو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انتی ذلک لآيات لقوم یؤمنون آیا ندیدند که خداوند روزی را برای هر کس که بخواهد فراخ میگرداند و یا تنگ میگیرد؟ بیگمان در این گشایش و تنگی نشانه است برای گروهی که ایمان میابرند. فآتید حقه ذلک خیر للذین يريدون وجه الله و اولئک هم المفلحون پس حق خیشاوندان و مسکینان و در رحماندگان را بده این برای کسانی که روی خدا می بهتر است و اینانند که رستگارند وَمَا آتَيْتُم مِن رِبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِن زکات تریدون وجه الله و آنچه به قصد ربا می دهید تا در اموال مردم فزونی یابد نزد خدا فزونی نخواهد یافت و آنچه را به عنوان زکات می پردازید که تنها وچه الله را می تلبید برکت و فزونی می یابد پس کسانی که چونین کنند اینان فزونی یافتگانند الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شئی سبحانه وتعالی عما یسرکون الله همان کسی است که شما را آفرید آنگاه به شما روزی داد پس شما را می میراند، آنگاه شما را زنده می کند آیا هیچ یک از شریکانتان می توانند چیزی از این کارها انجام دهند؟ او منزح و منازح و برتر است از آنچه شریک او قرار میدهند. الفساد فی البر والبحر بما كسبت ايد الناس يذقهم ليذقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. به سبب کارهایی که مردم انجام دادهاند.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 فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ الْقَيْمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْثِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ پس روی خود را به آین پایدار بیاور پیشتان که روزی فرار سد که برایش هیچ بازگشتی از سوی خداوند نیست آن روز مردم متفرق شوند من کافر فعلیه کفر و من عمل صالحا فلان یمهدون کسی که کفر ورزد پس کفرش بر زیان خود اوست و کسی که کار شایسته انجام دهد پس برای خودشان آماده می سازند لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرین تا خداوند کسانی را که ایمان آورده اند, و کارهای شایسته انجام داده اند از فضل خود پاداش دهد بیگمان او کافران را دوست نمی دارد و من آیاته این یرسلت ای ذیاح مبشرات و لیذیقکم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 و تا از فضل او روزی بجویید و باشد كه سپاس گویید ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فانتقمنا من الذین أجرموا وكان حقا علنا نصر امنن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 و اگرچه از که باران رحمت برانان نازل شود، مأیوس بودند. فانظر الى آثار رحمت الله کیف يحیی الارض بعد موتها؟ ان ذَلِكَ لَمُحْیِلْ مَوْتَهُ وهو على كل شَيْءٍ قدیر. پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را بعد از مردنش زنده می کند یقینا این خداوند زنده کننده مردگان است و او بر همه چیز تواناست وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا ریحًا فَرَأَوْهُ مُسْفَرًا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ و اگر بادی بفرستیم گرم و سوزان آنگاه آنکش زارحارا زرد شده ببینند معیوس شده و پس از آن ناسه پاس می شوند. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين پس ای پیامبر تو نمیتوانی سخنت را به گوش مردگان بشنوانی و نمیتوانی کران را هنگامی که پشت کنان رو میگردانند سخن و ندای خود را بشنوانی و ما انت بهادی العمی عن ضلالتهم این تسمعو الا من يؤمن بی فهم مسلمون و تو نمی توانی کوران را از گمراهیشان بازگردانی و هدایت کنی، تو تنها می توانی سخن خود را به کسانی بشنوانی که به آیات ما ایمان دارند، پس آنها در برابر حق تسلیم شدگان هستند. اللّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبًا يَخْلُقُ مَا يَشَاءَ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 ویوم تقوّم ساعت یقسم المجرمون مال بیش غیر ساعه کذالک کانو یقفکون. و روزی کی قیامت بر پاش شد مجرمان سوگند یاد میکنند که جسّا ساعتی در دنیا درنگ نکردند. آری اینگونه از حقیقت و راه حق بازگردانده میشوند. وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فكثاني که دانش و ایمان داده شده اند گویان به راستی شما به فرمان کتاب خدا تا روز رستاخیز درنگ کردید پس این روز رستاخیز است لیکن شما نمیدانستید دانستید لا الذین ظلمو معذرتهم ولا هم یستعتبون پس آن روز کسانی که ستم کردند از خواهیشان سودی ندارد و به آنان مهلت داده نخواهد شد. و نقد مربنالناس فی هذا القرآن من كل مثال ولئن جئتهم بأية لا الذین الذين تو به برای مردم در این قرآن از هر گونه مسئله و اگر نشانهای برای آنان بیاوری البته کسانی که کافر شدند گویند شما جز بیهود گویان نیستید. کذالک يطبع الله على قلوب الذین لا يعلمون اینگونه خداوند بر دلهای کسانی که نمی مهر می نهد تصبر وعد الله حق ولا يستخفن لا يستخفن کالذین لا پس ای پیام بر گرامی صبر پیش کن بیگمان گمان خدا حق است و هرگز کسانی که یقین ندارند تو را سبک سر نگردانند بسم الله الرحمن الرحیم الیف الف لام م آيات الكتاب الحكيم ان كتاب حکیم است بود و هدایت و رحمت برای نیکوکاران است الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وهم بِالْآخِرَةِ هُمْ کسانی که نماز را برپا می دارند و زکات را میپردازند و آنها به آخرت یقین دارند اولئی علی هدن من ربهم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 و ایزا تتلا علیه آیاتنا ولا مستكبرا مستکبرن که ان لم یسمعها که ان نفی اذنی وقرا فبشره و که آیات ما بر او خوانده شود تکبر کنان روی میگرداند گویی آن را نشنیده است او ای در گوش هایش سنگینی است پس او را به عذابی دردناک بشارت ده این الذين و وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم بیگمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند برای آنها باغ های پر نعمت بهشت است خالدین فیها وعد الله حقا وهو العزيز العزیز الحکیم در آن خواهند ماند بعدی خداوند راست است و او پیروزمند حکیم است خلق السماوات بغیر عمد ترونها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 خداوند آسمانها را بدون ستون آفرید که میبینید و در زمین کوهای استوار افکند تا شما را نلرزاند و از هر گونه جنبندی در آن بپراکند و از آسمان آبی نازل کردیم آنگاه در آن زمین هر جفت گیاه پرارزش و نیکو رویاندین هذا خلق الله فأرونی ماذا خلق الذین من دونه بل الظالمون فی ضلال مبین این آفرینش خداونده است پس به من نشان دهید کسانی که غیر از او هستند چه چیزی را آفریده اند. بل كثتم کاران در گمراهی آشکاری هستند ولقد آتینا لقمان الحکمه انشکر لله ومن یشکر فإنما یشکر لنفسه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 بی گمان شرک ستم بزرگی است و وصینا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفطاله في عامين حملته امه وهنا على وهن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 و برای پدر و مادرت شکر به آور آورد که بازگشت همه شما به سوی من است و این جا هدا که علا ان تشرک بی ما لیس لکبی علم فلا تطعهما تطع و فی الدنیا معروفا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 ای پسر قَالُ حَبَّةٍ مِنْ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 يا بني آتی الصلاة وامر بالمعروف ونه عن المنكر واصبر على ما اصابك إن ذلك من عزم الأمور. ای پسرک من نماز را بر پادار و امر به معروف کن و نهی از منکر کن. و بر هر آنچه به تو برسد صبر کن بیتردید این از کارهای سترگ است ولا تطعير خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور و بابی اتنایی از مردم روی مگردان و مغروران در زمین راه مرو بیگمان خدابند هیچ متکبر فخر فروشی را دوست ندارد و قصد فی مشیک و من صوتک ان مانکر الاخوات لصوت الحمیر و در راه رفتند اعتدال را رعایت کن و از صدای خود بکاه و هرگز فریاد نزن زیرا ترین صداها صدای خران است ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما ما في الارض و عليكم نعمه ظاهرة و و من الناس من يجادل في الله بغیر علم ولا هدن ولا كتاب منیر. آیا ندیدید که خداوند آنچه را که در آسمانها و را که در زمین است مسخر شما کرده است و نعمتهای خود را آشکار و پنهان بر شما ارزانی داشته است؟ از مردم کسی هست که بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنگری در باری خدا مجادله می کند و اذا قیل له متبعو ما أنزل الله قالوا بل نتبعو ما وجدنا آباءنا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 آیا حتی اگر شیطان آنان را به سوی عذاب سوزان دعوت کند باز هم از آنها پیروی می کنند و من وجه وجههو الله و هو محسن فقد استمسك بالعروة الوسقى و الله عاقبة الامور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 نمتعهم قلیلا ثم منضطرهم الى عذاب غلیر آنها را اندکی از متاع دنیا بهرمند می کنیم. سپس آنها را به تحمل عذاب سختی ناگزیر سازیم وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ و اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفرید مسلما میگویند الله بگو حمد و ستایش مخصوص خداوند است بلکه بیشتر آنها نمیدانند لله ما فی السماوات والارض ان الله هو الغنی الحمید آنچه در آسمانها و زمین است از آن خداست بیگمان خداوند است که بینیاز است و توداست. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز و اگر همه درختان روی زمین قلم شود و دریا مرکب گردد و هفت دریای دیگر به مدد آن بیاید سخنان خدا پایان نمی یابد بی تردید خداوند پیروزمند حکیم است ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحده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 نَهَارَ وَيُولِجُ نَهَارًا فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ آیا ندیدی که خداوند شب را در روز داخل میکند و روز را در شب داخل میگرداند و خورشید و ماه را مسخر کرده که هر یک تا زمانی معین در حرکت است و یقینا خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است ذلک بام ان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير این بدان سبب است که خداوند حق است و همانا آن چه به جز او میخوانند باطل است و همانا خداوند است که بلند مرتبه بزرگ است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 دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور وهنگامیكه در دريا موجی همچن صایبان آنها را بپوشاند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 يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرن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 و ما تدري نفس ماذا تكسب غدال و ما تدري نفس باي ارضي تموت اما الله عليم خبير. علم نزد خداست.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 کار مقداره, مقداره الف مما تعدون جهان هستی را از آسمان تا زمین تدبیر میکند سپس در روزی که مقدار آن هزار سال از سال هایی است که شما می شمارید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 ثم سواه ونفخ فیه من روحه وَجَعَلَ لَكُمُ السمع وَالْأَبْصَارَ والأفئده قَلِيلًا ما تشكرون آنگاه اندام او را سامان داد و از روح خود در آن دمید و برای شما گوش و چشمها و دلها قرار داد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 و در زمین ناپدید شدیم آیا در آفرینش تازعی خواهیم بود؟ بلکه آنان به دیدار پروردگارشان کافرند قل یتوفاکم ملک الموت الذي وکل بكم ثم الى ربكم ترجعون ای پیامبر بگو فرشته مرگ که بر شما گماشته شده جانتان را میگیرد. سپس به سوی پروردگارتان بازگردانده میشوید. ولو ترا اِذِ المجرمون نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرُدَّعْنَا فَرُدَّعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّ ببینی مجرمان را هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان سرهایشان به زیر اند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 بی نیز شما را فراموش کردیم و عذاب جابدن را به خاطر اعمالی که انجام می دادید بچشید. اینما یؤمن بآیاتنا آیاتن الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا و بحمد ربهم،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 ستجافا جنوبهم عن المضادع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون. پهلوهایشان از بسترها در دل شب دور می پروردگارشان را بیم و با امید می خانند. و از آنچه به آنها روزی دادیم انفاق می کنند. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين جذاء بما كانوا يعملون. پس هیچ کس نمیداند.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 همچون چون کسی است که فاسق است نه هرگز برابر نیستند اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوانزل نزلا بما كانوا يعملون اما کسانی که ایمان آوردند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 <تصح> كلما اراد ان يخج منها اعيد فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون واما كسانك فاسق شدند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 وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ العذاب الْأَدْنَادُونَ دون العذاب لَعَلَّهُمْ لعلهم و یقیناً به آنان از عذاب نزدی که این دنیا پیش از عذاب بزرگ آخرت میچشانیم چشانین شاید بازگردند من, اظلم من من ذکر بی آیات ربیه ثم اعرض عنها اینا من المجرمین منتقیمون و کیست ستمکار تر از آن کسی که به آیات پروردگارش پند دهند آنگاه از آن اعراض کند بیگمان ما از مجرمان انتقام خواهیم گرفت ولقد آتینا موسى الكتاب فلا تكن في مریة من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائیل براستی به موسی كتاب تورات دادیم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 که در روز قیامت میان آنها در آنچه اختلاف میکردند داوری میکنند. اولم لهم كم اهلکنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. اِنَّ فِي ذلك لَآيَاتٍ افلا آیا برای آنها روشن نشده است که چه اصلهای بسیاری را پیش از آنها هلاک کردین؟ که اینان در خانه ویران شده آنها راه میروند بیگمان در این نشانه‌ها ها و عبرت آیا نمی اولم نَنسخُ المائل الأبضل الجوزِ فَنُخج به زَووع فَنخجُ به زًا تأكل منه أن عامُهُم وَأَمفسُهُ أَفَل يُ بصرُ آ ندیدند ك ما آببرا بسوء زمین خش و بجاه میرانين پس به وسیله آن کشت را بیرون می آوریم که چهار پایانشان و خودشان از آن می خورند. آیا نمی بینند؟ و یقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین؟ و گویند اگر راست گویید این پیروزی کی ای خواهد بود؟ پ الفتح لا فعول الذي تف ایمن ولاوم میوم و بگو روز پیروزی کسانی که کافر شدند ایمانشان سودی نخواهد داشت و نه به آنها مهلت داده می شود. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ انهم مُنْتَظِرُونَ سپس ای پیامبر از آنها روی بگردان و منتظر باش که آن نیز منتظر هستند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 از خدا بترس و از کافران و منافقان اطاعت نکن بیگمان خداوند دانای حکیم است و اتبع ما یوحا ایلیک من این الله کان بما تعملون قبیرا و از آنچه از سوی پروردگارت به تو وحی می شود پیروی کن یقینا خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است. و توکل على الله و کفا بالله و بر خدا توکل کن و خداوند به عنوان کارساز و مدافع بسنده است. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّائِي فُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ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 فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا مَا بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَحِيمًا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 و خداوند آموزندی مهربان است. النبی أولى بالمؤمنین من أنفسهم وأزواجههم أمماتهم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 و سخمی از اموال خود را به آنان بدهید این حکم در کتاب نوشته شده است و اذ اخذنا من النبیین و منك ومن نوح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 و از همه آنان پیمان محکمی گرفتیم یسألُ الصادقين عن صدقهم عذابا أليما تا خداوند راستگویان را از صدقشان بپرسد و برای کافران عذابی دردناک آماده کرده است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 نعمت خدا را بر خود به یاد آورید هنگامی که لشکر‌هایی به سوی شما آمدند پس ما تند باد سختی بر آنها فرستادیم و لشکر‌هایی از فرشتگان که آنها را نمی دیدید و آنها را در هم کوبیدیم و خداوند به آنچه انجام انجام میدهید بیناست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 آنجا بود که مؤمنان آزمایش شدند و به سختی تکان خوردند. و اذیابون المنافقون و الذين في قلوبهم مرض ما وعدا الله و رسوله إلا غرور بنيز به یادآورید هنگامی را که منافقان و کسانی که در دلهایشان بیماری است گفتند خدا و پیامبرش جز فریب به ما وعده ای نداده است و ایز قال الطائفة منهم یا اهل یسری لا مقام لكم ويستأذن فریق منهم النبی يقولون إن بیوتنا عورة وما هی بعورة إن يریدون إلا فرارا و نیز هنگامی که گروهی از آنان گفتند ای أهل یسرب اینجا جای ماندن شما نیست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 ولو دخلت علیهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا یتیرا و اگر لشکر دشمنان از اطراف مدینه برانان وارد میشدند و خانههایشان را محاصره میكردند سپس پیشنهاد بازگشت به کفر و شرک به آنها می کردند می پذیرفتند و جز اندکی برای انتخاب آن درنگ نیمی کردند و لقد عهد الله من قبل لا یولون الادبار وكان عهد الله مسئولا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 قل لي فعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذ لا تمتعون إلا قليلاً ای پیامبر بگو اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید هرگز فرار سودی به حال شما نخواهد داشت. و انگاه جز اندکی از زندگی دنیا بحرمند نخواهید شد قل من ذا عصمكم من الله إن اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا لا يجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصيرا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 قد یعلمون الله المعویقین منکم و القائلین لإخوانهم هلوم ولا و لا إلا قلینا قطعا خداوند بازدارندگان را از شما و آنان را که به برادرانشان گفتند به سوی ما بیایید و جز آن به کارزار نمی آیند میشناسد. آشحه تن عليكم فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليهم من الموت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 اینان هرگز ایمان نیاورده اند لذا خداوند اعمالشان را تباه و نابود کرد و این کار بر خدا آسان است یحتبون الاحزاب <سؤال> لم يذهبوا و این یأتی الاحزاب و دونَ ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. آنها گمان میکنند که لشکریان احزاب هنوز نرفتهاند و اگر لشکریان احزاب بار دیگر برگردند، آرزو می کنند ای کاش آنان در میان اعراب بادی نشین بودند که از اخبار شما می شدند و اگر در میان شما باشند جز اندکی پیکار نکنند لقد کان لَكُمْ فی رسول الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كَانَ یرجو الله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 مِنَ المؤمنين رجال صدقو مَا عاهد الله وَمَا من از مؤمنان مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا بسته بودند وفاکردند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 و رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا در قذبه احزاب خداوند کافران را با خشمشان از مدینه بازگرداند در حالی که هیچ خیر و منفعتی نیافتند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 و قذفه فی قلوبهم مروع فریقا تقتلون و تأثیرون فریقا و خداوند کسانی از اهل کتاب را که از آنها حمایت کرده بودند از قلعه فرود آورد و در دلهایشان وحشت انداخت و شما گروهی را می کشتید و گروهی را اسیر می گرفتید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 و خداوند بر هر چیز تواناست يا ایوها النبی قل لأزواجك إن که این نتردن الحیات الدنیا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 و این کنت الله و رسوله و دار الله اعدل المحسنات من اگر شما خدا و پیامبرش و سرای آخرت را میخواهید. پس بدانید که خداوند برای نیکوکارانتان پاداش عظیمی آماده کرده است. یا نساء النبی من يأتي منكم بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله ای زنان پیامبر، هر کس از شما که گناه ناشایست آشکاری مرتکب شود، عذاب او او چندان افزوده می شود و این بر خدا آسان است.